و الحمد لله رب العالمين الله عليك سيدنا رسول الله و آله الطاهرين المعصومين و الله الله رحمتك يا رحم این که هم اصطلاح حکمن و موضوعاً بحث سهح روشن بشه. معتقد روایاتی شدیم که در باب و وطب روایاتی در باب کاهن و در باب عرافه عراف و اینها وارد شد. ثر در اینجا مردم صاحب و ساائل در صلله و سرح توی باب سرح، که باب کاهنی شد سه چهار تا رواید دارن خب در باب کاهن هم رواید پس مستم ممکنی دفتاسیشون چهار به چهار به چهار اما در باب سه رواید خیلی زیاد بودیشون هفتاش یا هشتش رو بردن بی زیاد بود و اونجا توضیحش رو عرض کردم که سر این کار صاحب وسائل قبل سالله هونستن بیشتر برای این اساس بود که به تقدم و یعنی اکتفا بکنه چون در عباب صابق به مناسبت متعدد گذاشته بود صاحب وسائل برون اگر الا اگر غنابش روایاتی که در سهره مثلا در اینجا از روایاتی که مردم آقای در این کتاب جامال احاضی سامازه اونی که با تفسیر خود 19 ساله باشه بقیهش هم به نحوه تقدمویتی اشاره کردن که فکر میکنم مجموعه روایاتی که در باب سه به اصطلاح قرار دادن در این کتاب در کتاب که خوبیش نیگه شماره هم داره شمارهی برای اون قرار دادن برده نه 19 سایی که در تیزن باید تقردم و یرتیشه تو اون فهرستشون که شون متعرض میشن در باب تحرین سر 29 ساییشون هم برازم بیشتر 20 ساییشون بخواست این چیه 29 ساییشون وزن در سایی در کتاب وساده در فهرستش 7 سال در خود کتاب 8 سا اینها تفاوت بین این رو اینی که مانک کردیم خب یه مقدار روایات رو خوندیم از باب 28 اقواب ما یکتسب جامال احادیس جند 22 یه روایت نصبتن مفتخریه که ما فعلا نداریم در اختیار ما نیست و فقط در کتاب احتجاج تبرسی در قرن ششم آمده نمیدونیم از تجام نرم کردیم من جمعه از سوالاتی که دیروز شون عبارتش رو خوندیم و بعضی از نکاتش هم باید بعد متعرض بشیم این جمله قال افیق در صاحر و امیه انسان به سهرهی فی صورت کرد اوله ما او غیر زاله میتونه هم میتصرفی بکنه و در کوفه نقل شده بود در زمان اصمان صاحری بود که یک شخصی رو که اونجا داشت تبدیلش کرد به سر تبدیل به شد که محل کلام شد در عبدالله و جندب به اصطلاح از شیره معروف یا عزبی عبدالله ابن جندب یا عباد الله جمهور ابن عبدالله بلن شد با شمشه ایشون صاحر و کش این به نعروف و قصه به عثمان و بدن و بحثایی که داره این سوال ظاهرا احتمال افیق داره صاحر انیاج الانسان به صحر فی صورت کم حبل حمار او غیب ظالم قار عليه السلام هو اعجز من ظالم انسان عاجز است و از عصب من ان یغیر خلق الله بدون تغییر خلق الیحی رو بده ان معرف من انما ابتل مرکله الله لثبره و و هو غیره من ابتل غیره این تغییر هو اصل و اصله پرو شریک الله تعالی فی خلق هی تعالی الله که کی اولو کبیرا لو قدر از صاحب و علامه وسط لدفن نفسی الحرم ول آفه ول امراض و ننخل بیاز من رأسه و فقر من ساحته بعد تا اینجا اما که این مطلب که امام فرمودن کسی که این کار رو بکنه شریک خداست اون حالا کسانی که این کار رو انجام میدن یا ممکنه تو به نگره کافر باشن مثلا مؤمن به الله نباشه بحث شریک مدرد بشه. ممکنم این که همین امرازی که ایشون گفتن مؤمنه به الله باشه چون حدیث سند نداره الان باید تعظن بهش قبولش بکنه اما در این حال بتونه همین که ایشون فرموده ذات البریه زن شعره باشه بلکه نه با عنوان اینکه شریع خداست بلکه در مقابل خدا کاری انجام میده اون که مثلا میگن میشه انداز زدن در اثر آهات آهات میذار موی سفیل رو سیاه کر. اونا معتقدن اونایی که الهی هستن اونایی که کافرن که کافرن چی هستن چه بیان اونایی که جزء علمای الهی هستند و ایمان به خدا دارن اونا اعتقاد داشتن خداوند متعال این قدرت ها رو در تنیر قرار داده اون اشکال معروف که مثلا قلب ماهیت لازم یاد اگر مثلا فرض کنید که مصر و طلا بکنید اونها گفتن قلب چون خداوند این قدرت قرار داده که مثلا این من تقریبا حالات و تصرفی تبدیل به طلا بشه چون اونها یک دیگه ای داشتن من حالا برگردم بحث میشم که طولانیه اونها حدود 8 شا اثر الکسر و الکسر اصلی میدونستان بقیه الکسرا رو فردی شرطی داره که طلا رو اشراط الکساز میدونستن حالا به جای شرح اونها در روزگار ما بیشتر مطرحه مسئله هسته و میدونیم الکترون داره پروتون داره یا هر پروتون داره این هرها اینجوری مساله هرچی اگر هر کردیم من با مثال میگم، مس الکترونش رو پروسونش 48 و چه، 88%، ثلا با 38% باشه، اونا حرفشون این بود که ما به همون اراده الادی این 48 رو به 88 می لذا علم جدید هم اینو افتضال نمی کنه. گناه یعنی اگر مس یارای یک ترکیب خواسته، اتومی باشه و هستی باشه، و طلا داره یک ترکیب دیگری باشه، اگر ترکیب مس رو مثل ثلا کرد، اون هم میشه چه برام کنه؟ ممزه هم نیست بعضی ها خیال میکنن. چون بعضی از سبزیجات هم هست بعضی شاید تویدهات هم باشه حسن در یه فصلبه های سبزیجات رنگ دندانش هم تلایی میشه اون ممزه هیه رنگ زاغریش بعضی از سبزیجات این ممزه به استباه خودشون این ظاهرش رنگ زرگی داره اما گازا این هم ماهیت و که عوض میشه مثلا این یک تصوراتی بوده لازم نیست تو این به باید شاید مثلا ناظر به رضیه خارجی باشه کسی خیال بکنه خودشی شریع دو خدا اونا بردارتون که بسا فلاسفه یا تب این قسمتش مال مرض اونا که تبه از کلم همیشه سه در چند جهت دخالت میکرده یهی سه رو با دیر مقایسه میکرده یهی سه رو با تب مقایسه میکرده در کتاب بخاری باب و سه تو کتاب و تب آور باب و سهن رو تو کتاب و تب عبردن و سرشم عرض کردم در مدینه بزرگان به اصطلاح اهل کتاب اضافی و چون تب هم بودن خیال میکردن مثلا این شفام جان کلون مدینه به سهر در مدینه تقابل بین سهن با تب بود در محکه تقابلش بین پیغمبر و تب سهر مثلا به رسولان میزن سایران عقاید این بود بحث موسان بودن ساحرا به علاوه کردیم این بیشترین آیات ما هم در تبر در سهم در مکه نازل شده بحث عقایدی مطرح بود چون تو مکه بحث عقایدی و نبوت و ایمان به غیب مطرح بود اما در روایاتی که ما باز داریم در سیر یا اهل سنت اونا که در تبر نازل وارد شده در مدینه چون اهل مدینه تبر رو در مقابل سهم می‌دیدن دو دو جهت‌ها کما این در مدینه به لحاظ حدود حالا اون که باید ثابت باشه یا نباشه آیا حد صاحب اقصده هست یا نه این هم در مدینه مطرح شد ولی از از از علمای اهل سنت بحث سه رو فرصم میدم مغنی ابن قدامه شما مجموع شیم مغنی ابن قدامه رو در مغنی ابن قدامه بحث سه رو اقصام سه رو این که حکمش چیست و موضوعش چیست این است کتاب ح این که ولدت النفسي، آل حرام، و آل و آل امراض، و آل نخل بيازنن راست، این اونجاست که سه در مقابل طب متره بوده. پیش خیال میکردم با یک نوع سهی، حالی میکنه که موش سفید، موج سفید سیاه بشه. یا مردگانی بسیار سنگین برداشته بشه. از کدام دست که دستیو سرشار است میشه خیلی تو ذهنم نیمه از, از بار معروف یوننا که که که ف رااصلا پدر ت حساب میشه چند نتا مح ترنتی یک ماری داشت اسایی داشت که ماری دور اسش بچیده بود. الان دارو خانابونین یک س سامانان یکی دورشه این رمز همونه این رمز دنیای ت پدر آن از همون طبیب معروف یونانی گرفته. مثلا درری ها نوشتهشون اینقدر در فوق های مورد زندگی می با خب این مرد رو زنده کردن خیام میکردن مثلا چیه مساله سحر خب اون فولادها هم در طب خودش واقعا فولاد است اله اخر صحبت ها لكن این بیاض و امراض و اینها این, این در حقیقت نبوده حالا چه ربطی خوردن در خارج اینها ادعی معتبره که این نظم الهی است که در بدن قرار داده ما اگر اون نظم رو انجام بدیم اصلا بدن مریض نمیشه تفسیر خاصیش تا امکان مهم بشن. ولیضا اصلا معتذر که اگر درست چیزی اصوله قبر بلد باشه تا نمیره. مادر اون که با بزرگوز از اون جهان مردن. راست گفتم من اینکه برادر مریض سوالشون نمیدونم. مثل رسینا 63 سالش بود خیلی ضعیف بود از خوده. با این مرض قولنج هم واسه مادرش خودش هم رسینا در قولنج قوراذه بود. از همه امراض در خصوص قولنج. غالبا قولنج زمانه ما ی کوریک بشه زمانا ما کوشنگلیه، اینا منتهي میشه ببینن سرطان میشه، سرطان روزه به اصطلاح. ولیه عادتاً خولنگ، خولنگ در روزه بزرگ و خاطر غذا خوش میشه، به سگیر میکنه، انسداد پیدا میکنه، اصطلاح خولنگ میشه. خولنگ چیزی نیست که عادتاً کوشنده باشه. بلکه خود اینا برای این خولنگ مرض میشه. حالا که ما اونها یک حرفی دارن که اگر مراعات آثار بشه، امراض از بدن دفع میشه. حتی بودن در در از اعتقاد به خوانغان عمره طولانیان که از نظر ما جهان دانش شده باشه و مثلا برای همین بیاثی که اینجا داره من دیگه می‌خوام شرحش بدم علی موضوع در کتب قدیم در باره ماده کلی کلرید در کتب قدیم خیلی داده اساس که ما هم همش گوگل میگیم الان یکی از اصولی که داره برای همین کاره یک ترتیب خاصی داره که کردن سیاه‌کازن و سفیده‌ الان اینکه ماکان این راجع به شرح حدیث شاید احتمالا بوده یه یک واقع خارجی یه بیشتر اون صحه نكن که احساس جوان تر بعد امام فرمودن به من اكثر الصغ عن راست این چون ممکن است واقعا دو نفر که با هم کاملا خوب باشه که یه روح به یه روح گرم گیر و با هم مثل دشمن میشن یقت و رابطه ها بین المتحاببین متحاببین و مشهاببین نمیشه و یجب الادا و تعرلم و یسقط ذهب دما و دما به دور یک شب و بحث سفور و نمام شر و منوت الارض بله بعد بعد داره که شر و منوت الارض به قدمه بعد داره و اقرب و اقابیل سه من اصفاب به منزلت ته همینی که من هم توضیح بدهم این دوست اقرب و اقابیل سه من اصفاب انهو چون کردم برای اثر جمعی که در اون زمان نازل بود، فقط یک نسخه اینا شنبلیله بود. ساده، نلقات اون ساده، ساده، مریض میشه. اس اونجا بود، فقط فرنبرم بود. این و قرن. شنبلیله با سمسن بود. که ما با ارده این خوب میشه حالش. بلند میشه ترقوا رو بده. در کتب اهل یک مشکلی که بوده برای اثر جمع خیال میکردن این صاحل که میاد این کار میکنه این اهل کتابه در کتاب مرشی شده و عقرب و عقابیل سر این از ان انهو به من ته که الان شهرشی خدمتون عرض کردن اینا خیال میکردن و سر سهر نبود اینا یک اعتقادات خاصی راجب به فلزات مخصوصی که این ها شده از در طب قدیم برای برای ها معروف شد و ارسان مردم برنان طب نباتی یا بیابی یا احشاب عروه میگن وکه بقیقت که به قدیم سه شده هم بیاه داره هم معدنیات داره که فلزات و خاک و اینها روشد. و هم به اصطلاح حیوان داره قسمت های از دادن ها حیوانات مخصوصی بود برای کارهایی به کار می میبردن حالا و هقره رو مثلا در باب گوگل، که یا آثار عجیبه ای داره حتی رساله ای داره حتی برمیر و خیلی چیز عجیوره یه شده چاک شده اخیران سه حد نداره مثلا این از ساهره آلج رجب فمتن این مجامعه از نصاب فجاعت طبی به غیر داره الارش رو عبره فقط امام میگه معظاله ساهر میاد یه کاری میکنه مرد بکتر مریض میشه اما طبیل که میاد او رو میکنه و شفاق میده راسته هم هسته هم کردم این تاریخی هم ارز کردم منشه تشابه صحر باطل از زمان پهنمبر در مدینه بود و میگن اهل یهود ازدهیشون با این کارها افراد رو مداوا میکرده خیار میکنه ساهرم ارز کردم که این تا اینجا روایات بود که ایشون آورده بعضی روایاتی که از روایات هست که ایشون بوران تقدم و یعتی داره مثل صاحب تو و صاحبش رو تقدم داره در همین کتاب داره اخر هم در کتاب جمال احادیث تقدم و یعتی شو رو شاهدشو در مصادر فعلا دیگه تقدم و معضل و, و علاذره اما ایشون مثلا تقدمی که حدیث وصیت نبی به علی چطره این عرض کردم یک روایت مفصلی که با این طول و تفسیرش منفردن در کتاب صدوق آمده نمدای احزارم آمده توی آخر صدوق با عنوان وسیعت و نبیل علیه مخیه علی علی علیه از کنم هیلتر که این مجموعه ای از روایات قیلشم ضعیف و دردشان سن از امیر و مومن نیست هست یک کسی برداشته مثلا فرصا کتاب بخاری و مسلم و کتاب عهد سنت و شیعه و مثلا چلپنجات و گرفته همه اولاش هست که یک یا علی منبل صدا کرده یا علی من علی کرد. خانه شد این الله همیشه درست کرد خلاصه اون زمان خیلی هنر رو درست کرده. شما میتونید ببینید یک روایت 200 چیزی هست اون با علی و علی گفت خدا به خانه کثر بالله العظیم نازل امه از این روایت مصادر اهل سنت هم هست این روایت زیاد می کنه که میشه برای اینکه اخلاق کفر شده حتی بر بعد از علو عناوین مكتوبه که کفر در روایات دائمه به معنی کفر مصطلح نیست. لذا این روایت هم تو کتاول کلامی‌ها خودم همین وقتی باشنه توی وایگاس با من توی مکتب احمدی خوندم که راستی بی بالا قبول داره. گفتم اطلاق کفره گفته شده حتی بر مواردی که کفر نیستن. یکیش همینه بر قطات سهر بالله العظیم من غازی ما مدار این رو خاصه. جدیه است تو این یه توی وصیت النبی چون منبع وصیت النبی نarker که ذری قوم چه زایی که, که روایت میشم اما مفرداتش هست یکی هم صاحبه بعد ایشون داره روایت عبدالعظیم حسنی با ورد فی بیان من از زنو این بحث کوا بحث لطیفی است چون دیگه جاش نیست و الا اگر اینا در مؤخر ما نکرده بودیم مستقلا وارد میشه این از بحث های بسیار قدیمی در امت اسلام به بحث از, از این بحث انصافاً بحث عقلانی هم هست نه این کاره بحث دینی باشه بالاخره به هر حال ها گناهانی رو که انسان انجام میده درجات داره بگه این انسان وجدانم می‌بینه میبینه دیگه هست که این مثلا درباب روابط بازر اگر نگاه بکنه حرامه اما نستجیر الله خود زنان یعنی اصل جامعه رو در خطر قرار میده درجات گناه فرامی کنه حالا فرض کنید مثلا یک کسی من مثال یک مقاله مینه از یک دولت کافر یک دولت ناصری تایید می‌کنه این یه چیزه یک کسی داره جاسوسی می‌کنه برای اون دولت خیلی فهم میکنه یعنی این وجاری ماست که انهار گناه فرق می‌کنه گناهانی هست در یک رشته در هر رشته خودش در مسائل اجتماعی یک دور در مسائل سیاسی یک دور در مسائل خانواده یک دور در مسائل عبادی یک دو حال یه کسی مثلا معترض باشه خیلی از به هیچ ثابت نیست. خب این یه جوری دیگه یکم ممکنه خودمون باشه. ممکنه معاذ باشه. خیلی فهمیدم با هم دیگه انساب قضیه این مطلب وجدانیه قبل از اینکه تعبدی باشه این مطلب وجدانیه ماست. و میشه تشریحش هم که از من چندبار بار گفتم اون بدن خود انسان. خاص اینکه این شاهرگشه این به اصطلاح شریان رو به دست اصلی رو خب این اگر نبنده میکش آدم رو. یعنی رو رو میکشه آدم یعنی اگه خون میینه زدن خوشنداست دیگه اما یکی که سیخ سر شده این اون می پنده خون بذار دستش لذاب در روایات ما همینجور تشریح شده در مشهورات که ثغائر منزل اون خونش قادر سر انگشت بنزای این عبارت دین فواهای سنی و شیعه معروف شده از ثغائر مکفرات ثغائر مکفرات یعنی اگه شما در ثغائر توبه نمکنید خود بخود خود از دین میره یعنی شما وقتی واجبات انجام بدید خود سقائر از ذهن میره مثلا این رواد در هم هست خیلی بسرد وجودی. من کشیعه به این موضوع نیدم که انسان وقتی نماز میخونه مثلا ظهر که میخونه تمام اون سقائری که از صبح تا ظهر مرتکب شده از ذهن میده باز نماز عصر مخونه فاصله ما بینه هنو مغرف مخونه از صلابات الخمس مکفراتون لما بینه هن از ذنوب مثلا اون احتیاط به خرقیان یعنی شما اگر هر انگشتونه خون آوردی نشه بسندن اولش شما فوقش بسته میشه حالش نیست دیگه اما اگر شما شریانش رو از زدن نگیرین جلوش نگیرید قطعا می‌کشه به لذا این که این نحسی داریم که نسبت به قبائر توبه <تصال> واجبه یکی از واجبات توبه هستند مثلا توبه از قبائر نظر استاد اونم معلومه بودونه در قواعدش یک جلد هفتمش تو آخرش یا در توبه دارن اینجا این بحثو دارن که آیا توبه واجب عقلی یه دعا عجل شرعی است انز که اگر ما چند داخت این بحثا شاید طبق قهازی بایدن باشه توبه گاهی اطلاق شده به رجوع انسان live حق این واجب عقلی است اما توبه گاهی اطلاق شده به استخدار از گناهی قدیر این واجب شرعی است یکیش واجب عقلی است یکیش واجب شرعی است یا یهنینان توبوه الالله اون واجب عقلی است که به هم روش ارشادی حالا اون بحث نشه برای کبائر و سوائر یه مقدار بحث عقلی داره و اغلایی داره که قابل قبوله یه مقدار بحث معروف روایی و آیات داره چون ظاهر آیات هم همینه این تشتر بود کبائر ما تنهاونه هم نکفت داره هم کن سیاعت کن ولذا معروفه در سوائر مکفران شده؟ سیاعت مکفران تعبیر به در قرآن داری اوقات معنای آمده گاهی هم به معنای لمن و فواهش الا لمن لمن تفسیر شده در سی دیگه داره تفسیر شده به سقای و از همون اول میانه علمای اسلام اختلاف بوده که آیا ما گناه رو به دو قسم بکنیم یا نه مشهوره بین علمای اسلام سنتا شیعتا غیره که دو قسمه سقیره و کبیره و اثر هم اینه که در ثقائر طوبه واجب نیست مکفرات رو در ثقائر طوبه واجبه مکفرات نیستن دقیق مگر اینکه اصرار بر ثقائر باشه که اصرار بر ثقائر ملحقش می‌کنه به کبیره این معروف بین علمان ازدهیم از علمان سنی هستن اقوالشون در زیل آیه اگر به کتب تفسیر حساب قطوری مراد شد نمیخونم ازداد بسی ثقائر میگن نه امزونه و كله ها کبایر ما صغایر و کبایر نه اصلا علمای ما هم آورشویی آورشویی هم همینطوره ایشون معتقد را که ذنوب کله ها کبایر و محصیت المولا کبیرتو دیگه صغیر و کبیر نداریم این که در روایات بعضی کبیر و صغیری نسبیه یعنی این یکی نسبت، صرفاً مثلا نشجی رو در زنا نظر به نظر و رأجنوی کبیره نه این واقعا نظر رأجنوی کبیر نیست اون صغیر اونم مضغر به ادالت فهمون میکنم معروف بین علما اهل سنت و شیعه صغیره مضغر ادالت نیست الا محل اسراء نگاهی تر یک بار دو بار بیگزن محرم این از ادالت خارج شد روی این مبنا چرا از ادالت خارجیم شد خیلی آثار داره من وارد این بحثی میخواهم اینجا فقط یه اشاره هست که بحث لطیقی هم هست و در کتب اصحاب ما در ادهی از موارد متعرض کبائر و سقائر شدن اخیرا به مناسبتی که در کتاب اروا تو بحث اشتاد تقلید آوردن چون نمیشتن مثلا مشتداد عادل باشه بی مناسبت آقای تو منحاد سالحی تو بحث اشتاد تقلید آوردن تو شرمی تو تنگیر شرم بحث اورده آوردن در کتاب اشتاد تقلید اما در کتب حدیثی ما مثلا در باب زروق معاصی اونجا آمده و در کتاب مثل وسائل کتاب هایی که بگیم افتان در باب جهاد و نفس اول از این دستو سهیر و کبیفه پس این در کتاب جامال احادیث یا وسائل یه جاست تو اولوه در وسائل فقیه جای دیگه بحث لطیفه اون اخ ما روایاتی که داریم در کبائر روایاتی که در مسادر ما آمده بعضیاش از احل سنت هم هست با اختلاف من روایاتی که ما در باب کبائر داریم انصافا مختلفه و مؤزم روایاتی که ما در کبائر داریم مؤزم این روایات ذریب و سنرده. یه چند دونه. مثلا در جامعه و چهار جمع کرده شب بیشتی من باشه و چهار تا. مثلا هفتش دستریه برای برقیش... اش علیصان درست کرد برای خالی از اشخال نیست و مثلا این هم داره هفتا بعد در هفتاشون اسم یکی هم در یکی, یکی دیگر نیست این یک مشکلی داره حالا غیر از خود بحث کباه و ساقایه یه مشکلی هم روایات ما داره در جمله بخیر روایات ما تقریبا این چه بندی شده مثلا یک روایات روایات عبدالعظیم حسنیه به زمان الله تعالی علیه که از چند مستر آمده و نسبتا هم مفصل روز به روایت مفصله ایست در باب تبایه روایت عبدالعظیم حسنی من این مدار نسته هستم که اگر شوی بحث لطیفی هم هست خاصی مراجعه بفرمایید مثلا هیگه بر از این تحقیل اینو تحقیل مولد پیفن برکرم در مسادر حدیثی و فقی و کمسر تحلیل علمی شده اونجا هست حدیث عبدالعظیم حسنی در کافی هم آمده در سبتا آمده. این یه سرش مجهول دردی از عبدالعزیم و حسنی نمیدونم چون معروف معروف نشد عبدالعظیم یعنی کاملا سری و مخفیانه در ری زندگی میکرد حتی معروف اینطوری که وقتی ایشون فوت کرده بازشون کنده که ایشونو بشودن دیدم اونجا نوشته دل تن عبدالعظیم بن فلان بن فلان اونجا نوشته برقی یعنی تو و طرفرسین دردی که انسان مشهوری بوده در زمان خودش بیاد با ایشان ملاقات بکنن و این حدیدی البته بعدی پسر قوم بوده قوم تا تحقیم خاصله اینید یه فاصله تحقیمی که عوض نیره سر سر پنچی مثل خیلی فاصله زیاد نیست اما انصافت خیلی الان شواهد معیید نیست نیمیرون چون مثلا یک کسی رو اینقدر تا بعد از موتیشان تو جرازه ایشان تو جسد ایسی لباسای ایشان نصر که لف این berichten خود مرحوم برگی میگه بله آقا یه یا کامل قم نرو کرد که من با عبدالرضیم حسینی در رابطه ملاقات کردم که من این حدیث رو نقل کردم که احتیاج به اون نوشته و لباس‌های ایشان در هر حال این روایت به لحاظ سندش الان مشکل نداره به لحاظ ظاهرش عدت من اسهام در کتاب برگی عدت من اسهام به مشکل فنی داره که بجاشش یه بیت تورایی میشه اونها شعر بده مشاهر و چیز دیگه انا عبدان و همای البردی حسن ظاهر اصلا مشکل نداره عده من اصحاب اینا در ظاهر مشکل نداره مگه یه جای دیگه‌ای که چجوری است و احمد بردی هم جزء مشکل نداره اما با اون چیزایی که اکثر احوال مرحوم عبدالعظیم حسینی رو کردن این نمیشه یعنی جوهر ما پیدا نمی‌کنه در حال در حال نسبتاً جزوی رواید که به در باب کباره و نسبتاً طولانیه که ما در کباره پنشتا داریم که نرکباره هستا داریم هفته شنره صحیح داریم خوب صحیح تیشه ما هفته و داریم ها داریم که به هر حال این را که هم بلازیم به نظر من 14 پونزه ساله هسته و سایه جلده جلد 16 در اونجا ایشون متن رواده کامل آورده امروز من خوندم سابقا هم خونده بودم شماره کرد شماره تو زهرا بود مثلا 16 روز امروز دیگه هستید به شماره برسه بنظرم بین 14 تا 16, 16 از 7 تا بیشتر به 20 تا نمی میرسه روایت توی این روایت من چرا اینا تاکید می‌کنم تو روایت قبایل در دو سه متن هست در معظم روایت اما این حضوری من مقصده ما بود یکی از مطونی که توی سهر هر سوات هم دورد از این حضوری من حضوری من مطون متعددی داره در اون اکثر مطون سهر نیست در اکثر مطون اون از که نیست جمع اصنه صحیح گاره که هفته هست تو اونام سهر نیست که پیش ما سنده صحیح مطابر داره زمان و که تو جای برس تو اونام سهر نیست اون هفته هم س اما تو چند تا سهر هست اون روایت بیستایی هم نگاه کرده من بود سهر نبود اما تو چند تاش سهر هست یکیش اینه یکیش همی روایت عبدالعظیم حسدین بله یکیش اینه که جهاب نفسه لعن الله تعالی قول از به الله و سهر لعن الله تعالی بود. و لغد ایمون لبن شراح ما لهو فل آخرت من خلا با اون زابطه ای که در واقع لباس ما او عبدالله علیه النار نمی سازه مالهم فی الاخره قرار اثبات نان نمیشه یکی از روایات که اثر هست این یکی روایت مرسله عواص که خیلی ضعیفه که در کنز الفوائل هم در قالن هم تذ اعظمهم نشرت به الله باشه این دو روایت از روایات کوابث یکی روایاتی که روایت سوم از ابی هریره به نظر رویت عبی حرره به دو سه مصنه به دو مصنه توی متن مصن رویت عبی حرره اشتنه با سرع سر الموبقات موبقات یعنی حلاک کننده مولد ایگه آرسولا ما هم نقل عشر که به الله بسته پس توی مجموع روایات فرامانی که ما در باب کبائر داشتیم در سه روایت چه سه ها آمده و به دحاظ سند و به دحاظ سند اونی که به حسن ظاهر میشه دیگه این همین اولیش عبدالعظیمه اون دو تاییه اعتباری نداره اما رواست عبدالعظیم فقط من اصلا من شبههی که دارم که مثلا احمد برقی رفته باشه تهران خدمت ایشان رسیده و ایشان شنیده و خب با اون وضعی که برها برای شناسایی مرمومه عبدالعظیم و حسنی گفتن انصافا نمیسوزه این باب روایات اینا من دیگه بقیه شنی میخونم فقط مخواستن اشاره بکنم است که در باب کبائر آمده که در بعضی از این روایات سر هست اما در محزم در محزم روایات کبائر لفظ سه وارد نشده این یک. و این صاحبشم اگر ما معیار در کبائر ما عدالله علیه نار باشه تو آیات نار نداریم صاحب ما لهو که آخرت من خلاف دلاره هم. دیگه تفصیل روایت کباره من یه نظر ارزتر که ذهنیتون آماده بشه مراجعه کنید یا اینشان اگر فرصت کردم خود من متعرض روایتش کنید ما روایت دیگری داریم این چند روایت در کتاب بهار هم داره در کتاب به اسطلاح جامعه الاحازی تقریبا یک بابی برش را داره بابی آثار گناهان که این در دعای کومیلم داره alonger than the annals of the داریم به مختلف مختلفای محمد وارد. باز اون یک طاریفه از درمورد که از ذنوب ولتی مثلا طلل ملهوا از ذنوب ولتی از نهرا و در یکی از اون روایاتش در اونم در همیشه آمده اینم طاریفون هم در طاریفه ای از روایات هست. این در 5 سال 6 سال سال همین یعنی نگاه کردم بعد به دقت نگاه کردم ادبی شد. در یکی از اون روایات آمده از ظنوب و لطی طول از سهر و الکهانت و ولی ایمان و به نجوم و تکذیب و بلکدر. این از همه اون روایات نیست میگو در روایاتی که ایشون داره ملعونون ملعون مصدقون به سهر از مصدقون در مصدقون به سهر در کتاب های معروفشون معروف درجیه بله و یه نظر از که سابقا خونده شد بله یکی روایت از ابي سعید خضری لا یک خلل جنت مؤمنون باشه مؤمن باشه حتی اگر در روایات ما مدمنو صحیح تمام بیا در روایات احنا سنت مؤمنون به پر و متدبر باشه به جای مؤمن ظاهرا اون دو تا بهتر باشه تا احنا موجوده ما و انواع از رواریاتی که ما دارید که ایشون در اینجا به نهر اشاره از اشاره میکنه در همین جامعه احادیس جده 22 چون ما این رو مفسرن مفسرن خوندیم صفحه 211 یه همین جده 22 باب ده این باب ده رو این باب رو ساحل و ساحل مداره خوب کاری کردید یشان جامعه احادیس خوب کاری کردید یه بابی قرار داده با همه محنوال شخص کل روایاتی در سخته تبدیل به سخت شده یک جا جمع کرده بسیار کار خوبی اصافا خیلی کار خوبی اونجا هم توضیح دادیم که روایات دست دستبندیه مثلا یکی از روایات خیلی مهمش روایات امار ابن مروان که اسانید متعدد داره و متونشم مختلفه روایات امار ابن مروان که متعرضه شدیم در روایات امار ابن مروان سه نیامره یکی از این روایات ما روایت سماع است که این هم متعدد داره متونه متعدد داره که اگر واقعین دا Fragen نجید به راه هستگه نیخواهم دخونم متعدد داره در این متونه متعددی این هم سهر نیامده در متونه متعدد اینا دسته بنده در این متونه متعدد سماعه هم سهر نیامده یک از روایت هم دارین مال سکونیه این هم مطرون متعدد و اصاند متعدد داره که اینجا داره توی یکی از این روایات آمده و اجرال کاهن این داره در یکی از روایات به اصطلاح همین جناب آیه سکونی اجرال کاهن داره سه باز نداره دقیقه می فرمین توی یه روایات هست مال عبدالدان ترهن اونم اجرال کاهن داره سه نداره در اون محن مفصله که اونجا هست بله تیزا <تصفيق> بود یه روایت واحدهی در در جهتریاد که خیلی طولانیه خیلی طولانیه در جهتریاد هیچ روایتی در زبونه ندارید منحسرن به اونه که احتمالاً هم که طلاق از باشه. اونجا هم کافر دا... کاهن داره از جور کاهن با عنوان صحب در اونجا وارد شده که به حساب ظاهر سند نداره یعنی به حساب ظاهر نمتونه آن ما سندش قبول بکنیم اما سهر نداره این راکب مجموعه یه روایاتی که ما تا اینجا در باب سهر داشتیم ساخرم اکثر اینها سندهای ضعیف بود اون وقت ایشون, ایشون آخری وقتی من تمام, تمام باب 29 ایشون راجب به کهانت و عرافه عرافه ارز کردم کسی بود که جمعی داشته رعی بوده با بفتاره از حراسط اونجه هم اخبار رو مطلع می شده دوزنی موزید در خود قرآن هم در آیاتی که در مکه هش بله کلمه کاهن دارید فضاک که از ما هم, هم تبینیم مثلا بگید لکاهنه ولا مجنون ولا به قول کاهن این هم در قرآن دارید صاحب که از اون آن امراف چند تا لباید و کاهن هست از وسائل هم خوندیم بلد. چون از وسائل خوندیم دیگه اینجا تکرار نمی کنیم حدیث شماره یکش رو از وسائل خوندیم و تکرار نمی کنیم فقط من اینجا قبل از اینکه وارد بشن این نکته رو عرض می کنم. در کتاب جنفریات داره به اصنادی علی علیه اعتبال داره هم از کتاب قضایه و سنن ب و لعريفو فلنا، و لابود دل نل امری، بر رتان کاند او فاجره، بر رهیز بید، بر ل خوبی، بر ل انسان خوب فهده. این لابود دل نل عريف، و لعريفو فلنا، و لابود دل نل امری، و ل امرشو لابود دل نل کاند او فاجره. یا در حدیث چیش و نوش بود، در شماری دهش در نهض زباله. این که امیر روحونی شدیدر آمدن بعد فرمیدن که تو خوابی به نفر بکاری یا بیداری بعد حضرتان یا نفر عراق دارم تن را میکن یا بیدار الا انقال یا نفر این نگاهو خوابی مثله ها به ساعت در این ساعت دسته هم بوده من اللی فقال انها ساعتن لا یز اوفی ها عبدون الا ستجید وقت الا هم يكون اشارم او عریفن او شرطیه هم اینم این هم کلمه عریف یه روایت دیگه هم هست که از کشی آمده که صادقه هم این خون بیمان اقبطه این وشیر اصدی قال زخن فعلا عبی جعفل الله من الحسر وح من شخصیتی هستم در خودم به این حسر و این نقوم میکانه لهم عریفون فه هلک فعرازو اینو علیه این سآل می کنید که امام می امام من می که تو می گیدیم حسابم بالاست با اسلامی حسابا عرضش ناده الا انقال و اما قولو که نقومی کان اله هم عریفون فه هلک فه ارازو همی علیه فه این کند تکره و جمعه و طبزه دو رو اگر بهش بلد میان فتعرف برو عریفش فتعرف علا قومه یه خود سلطانون جائر استفاده شاهزادگان به امر این مسلم این رو بخواد بگیره، تصدیق بکنه، یس و دم فتشواکون فی دمی و عسا آنها فنا در این دنیا، گویا ممکنه که به تو وعده احوال دنیا اون احوال به تو نرسه. ببینید، هیچ از نام استفاده نکنید. این سه تا روایت یکی شماره 9، یکی شماره 10، یکی شماره 11 ایشو در ذیل عراق اوردگیش خودش مرود عراقه می‌ذین. اشتباه حساب ندارید. این مراده از عریف الان هم اراغی ها مختار اون در اون زمان رس بوده این رس بیشتر از زمان همین رو مؤمنی شد در کوفه مثلا در کوفه اشائر مختلفی بودن هر عشیره یک شناس که شده کسی بوده اطلاع ما مثلا میگیم مثل مختار مثلا مثل مختار مهلا آشنای اونها مثلا این حریف بنی اصد بوده این عریف بود و به اون چی که در میانه عشیره اتفاق میافتاد یه کسی روشون اضافه میشد یه کسی جون کش میشد چون ولاء بود یه کسی ممکن بود کارها خارها رو لسع عریف انجام میدادن یه نوع واسطه مرد دولت در بین اون عشیره بود و رجا در ذیلش امام فرمون گاهی سلطان میخواد یه کسی رو بگیره چون نمی‌شناسن به این مراجعه این آقا کجاست شما چون عریف هستین با این ما تحویل بدید خیلا میگفتن با خون با سلطان شدید میشه با این کاره در این سروایت عریف مراد این نه عراف اشتماعی در جمع رحابی در این سروایت عریف مراد این منصب اجتماعی اصلافی به عراف داره عراف کسی میده که جنگی بوده چه جن می داشته جن رو در لحظه عراف, عراف رعی یعنی یراح مرحی این عریف این تقریباً شبیه مثل رئیس مثلا رئیس سندیکای مثلا تریا طیاستون شبیه بوده یک کسی که رئیس یک آشتان یک عشیره ای بوده سلطان اگر مثلا کارتون عشیره انجام بده توسط اون عریف انجام می‌جاده پیش لذا امام فرض لابد دل کل لوامون عریف بالاخره هر یک عریف می‌ذاره که برای به بنام منافتا این عرف نیست این عریف درد سال و جامل الاهابیس رحمه الله <سؤال> هرکی بوده اینجا اشتواه کرده اینجا اشتواه کرده بوده به بوده عرافه یه چیزی دیگه مرافیه نه اون عرافه ای که جز گناهان است و کار